حالت سوال در مورد کلام هایی که بر حرام یا قسم عموما داخل ارف بر هر چیز یا حرام میکرند یا قسم میکورند ای آیا این قسم یا حرام منعقد می شود یا نه اول ما در شرعت نو قسم داري یه قسم یا یمین غموس بیږند در مورد کاریک در گذاشته صورت گرفته و قسم دروغین خوردن که اینطور نشده است اینجا زناهای کبیره و اینکیه قسم راک است که نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ را در چیزهای محلقات ده شده است. یه قسمی است که در مورد آینده فلان را انجام نمیده هم و رویین قسم خوردن سوگند یاد کردن اگر قرآن کارا انجام داد کفاره لازم میشود و اگر روی کار خیلی قسم کرده بود بہتر این است که قسم را بشکنان الان بعضی مردم متعصفانه خنابر جهالت های قسم های دلوغین همی و فکر می, می که اللہ شکستن قسم گناه هست یا آفتی و مصیبتی لازم می شود در حال اگر روی کاری درستی قسم کرده بود و بر کار درست پاپ کرد که من انجام نبیده هم خود همی کار هر، هست و قسم را بشکند و کفاری کار را او قسم را پرداخت کند تا از خیلی کاری خی درد محرون نوارد من اله حضرت تزدیک از جلات قسم کرده بود که به نسبه بین کمک نمیتونم در مسئله عمود تومت هزه سایشه مسئله پیش دلوستای میرسه میبه اونجا خود مسته هم دست داشت شایه بود و هم باقیه در شایه بردام اصفالی بود بس تدیه اکمه قسم کردیموند که چون زی خود مسته این از سردائیه های تدیه اکمه برود خود بایدش کمک نمیتونم آیه نازه شد قسم نکودید دعای قسمو شکست شد و کفرش کن خود آن حضرت الله علیه علیہ وسلم این روز قسم کردن که من بشمال سواری نمیده هم به از عراض اشعریین دوباره داد وقتی داد ورگو سه هزش به قسم کردید من نداده الله دادی اما اگر قسم بکرم بدانم کار بعدی بهتره قسم را میشکنم و کفار کارو را و کفاری قسم بیده پس سنت امیدگیعین هستی در روی قسم دوست، فاک شایدی قسم خود کار کار اباز قسمی با ما کار میکنی یا قرآن اگر مور بر جنابش نمی رودید فکر یه درست کردم شما کارش اشتباه و غلط یادرید بر روی کار درست باورشار کردن کفاره قدره کفاره اگر پول دارد این پول متوجه بشید که بعضی چیزا با روزه گرفتن است روزه در مرحله سومه اول آزادی غلام غلام نبود ده روز به نهار و شام دادن. یا معادله پول طول چه قدرست؟ هر نفر یک صدقه الفیل. حمید در رمض نفر داخلی و باید به ده نفر داده یک نفر نفران درست نیست. به ده نفر فغیر. و شرط این از در روز سیخون. اللہ اگر پول نداشت. بعد روز رو است اگر پول نیست بعد روز رو است. و شرط روزه این است که باید در تا پایان روز سوم پول دستش نایجا دید یعنی اگر روز دو روز گرفت، روز دو روز گرفت، روز ثوم یارانه واری عارض شدند بس پولدار شد، باید از اول دلی پول بدارد، روز دو باطل شدند پس پول چرکی و تا پایان روز سوم باید پول و دستش نباشد باید سیدون فقط با روزه گرفتن نه، روز محل سوم هست این دو قسم، قسم سر و قسمی یه و همین چیزهایی که انسان نمی دو تاریخ کردن، این تاریخی نرفیم. چیزیک انسان اشتباه قسم می برد. فکر می کنه خلایی نه آمده از، دخالی کامده از، آمده، چون قسم کرده، این در یمین جمعیت لاغ را خلاص. این کردن. ان تاریخ بلی کہ حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علی، امام محمد بن الحسن شعیب علیہ شاگرد دیما ابو عبد الرحمۃ اللہ علیہ کہ امام ابن ہماہہ حنفیہ انقار ترجیدا ہے همین قسمہ ان روزی داخل ذیل ارادہ وا داخل صار حرام و حرام و حرام و قسم قسم یہ نہ لغو ہے یہ نہ تفاریدی وا ابن ہماہہ حنفیہ انقار ترجیدا داخل شهر ہدایت و ای ضمانم در این زبوات تردید که کل مردم بر هر چیزی حرام میکنن و اینو بلا حرام کرده و قسم خوردن در هم قسم هم حرام قسم خود حرام کرد و حارت دا کفاره داره و کفاره می دوسته این چیزی کلاما میگین به خاطر اوس مردم شو از بزرگ تقوسی متاسفانه تمام روزی شرک ریجان مرگ تو کلاف علانی ممرت علانی هم نه البته در قسمتی بگیر خلاک تا تا مگه فقط آشکار شد کرد؟ اصلا کرده؟ بدون نام خدا در اصلیت بجانب و مجلس و قرآنی بلایی نمیشود هم در زبان خواس اول نهست. هم نه نه اگر مغازلہ برای اخلوق کالای قسم بخوری خیانت ہے سن داغ بارے نبی کریم علیہ السلام فرمودن کہ اگر فروشنده و خریدار با اخلاق معاملے قائم واشن وہ رکہ فی بیعہ در معاملات برکت بھی ائے گی اگر دروغ لجان با دروغ قسم بخوران که وہ تک برکت نہ ہوا برکت نہ برداشت کرے گا خانه شفا شفا نبی کریم فرمودن کہ تمام دروغین این ها درست و خرامه. برکت ماموریت پول بدست نیسته باد. کار در چفلج پولی است در برکت است. خیلی پودارم برکت نیست. خیلی پودارم میلاردان میگی فرانکیز نگو فرانکیز نگو فرانکیز نگو با چیکو؟ جلو؟ نان چی؟ نان خوش؟ از گوشت مارو؟ گوشت کرمه؟ نه مارو؟ برکت نیست. برکت دو نکی. کم اما برکت داشته باشه.